بود اثر دکتر علی شریعتی با صدای احمد گنجی تهیه کننده دامون آذری، کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی مرا کسی نساخت خدا ساخت نه آنچنان که کسی میخواست که من کسی نداشتم کسم خدا بود کس بی کسان او بود که مرا ساخت آنچنان که خودش خواست نه از من پرسید و نه از آن من دیگرم من یک گلبی صاحب بودم مرا از روح خود در آن دمید و بر روی خاک و در زیر آفتاب تنها رهایم کرد مرا به خودم واگذاشت آق، آسمان کسی هم مرا دوست نداشت به فکرم نبود وقتی داشتند مرا میآفریدند میسرشتند کسی آن گوشه خدا خدا نمیکرد وقتی داشتم روح میپذیرفتم شکل میگرفتم قدم میکشیدم چشم رنگ میخورد چهرم طرح می شدد بینیم نجابت میگرفت فرشته ظریف و شوخ و مهربان و چابک با نوک انگشتان کوچک سهرآفرینش آن را صاف و صوف نمی کرد. بر انگاره کاشکی که تک درختی خشک بر پرده خیالش تصویر کرده است، آن را تیز و اسیانگر و مهاجم نمی پرداخت. وقتی می خواستند قامتم را برکشند، خیشاوندان شاعر خیال پرور و بلند نداشتم تا خیال و آرزوی خیش را نسار بالای من کند وقتی می‌خواستند کار دل را در سینم آغاز کنند آشنایی دلسوز و دلشناس نداشتم تا برود و بگردد و از خزانه دلهای خوب بهترین را برگزیند وقتی روح را خواستند در کال بدن بدمند هیچکس پریشان و ملتحب دست به کار نشد تا از نزحتدگه ارواح فرشتگان قدیسان شاعران، عارفان و الهههای زیبایی های روح و خدایان هنر و احساس و ایمان نازترین و نازنینترین را انتخاب کند وقتی وقتی وقتی وقتی و در هر یک از این اوقات فرشته ها از آن جوان تنها و منتظری که آنجایی ستاده و چهرهش گلنداخده و دلوا پس و بی قرار و شتاب زده این پا آن پا و تند تند به پیپش پک می زند و انگشتانش مرتعش است و دلش گرس گرس میزند هی hey, نمیپرسیدند. خب اینجا چه کار کنیم؟ این را چگونه بتراشیم؟ آن را از چه ها ترکیب کنیم؟ در این باره نظرت چیست؟ نقشت کدام است؟ چرا میپسندی؟ چگونه دوست داری؟ آرزوی دلت چیست؟ خوب شد؟ خوب است؟ بس است؟ باز هم ذریفتر؟ خوب شد؟ باز هم نازکتر؟ اینجور؟ هنوز هم لطیفتر؟ خوب شد؟ از این هم؟ این؟ این رنگ هم نه؟ این رنگ خوب است؟ این هم نه؟ آن رنگ چطور؟ آن هم نه؟ آن رنگ مخصوص را بیار از آنکه خیلی کم کار میکنیم ها خوب شد؟ این را که حتماً میپسندی باز هم نه؟ پس چه رنگی؟ مثل این؟ نه؟ پس چگونه؟ دیگر رنگی نیست از دویست هزار گونه رنگی که خداوند خدا آفریده است هیچ کدامش به درد تو نخورد؟ به کار اینها نیامد؟ از همینها ناچار باید یکی را انتخاب کنی حرف بزن تصمیم بگیر چرا ناراحتی قصه میخوری؟ چرا حرف نمیزنی؟ یالا بگو به هم بگو زود آه او چه بگوید ای با پریشانی و تلخی و بیچارگی این پا وام میکند و نمیداند چه کند آخر چه جوابی بدهد لا چندین سال یک عمر مهلتش نمیدهند که کمی در این باره فکر کند فرصتی داشته باشد که بتواند تصمیمی بگیرد از دلش هم نمیآید یکی از همین رنگ را برای آنها انتخاب کند با اینها رنگ بزند اگر می شود؟ حیف است آخر این رنگها را خدا برای گلها، ستارها، آسمانها، افقها، برکها، دریاها، پرنده های رنگین، چشمهای رنگین، آهو آهوها، احجار کریمه، جواهر قیمتی ساخته به درد آنها نمی خورد. خوب نیست، آخر آنها جان اویند او دلش نمیآید که جانش را با اینها رنگ زند. اگر رنگ اینها آنجور که او آرزو می کند از آب در نیاید، زندگیش سیاه می شود. دیگر این دنیا بیمعنی بیمعنی می شود. دیگر زندگی کردن چه فایده ای دارد؟ دیگر همه آفرینش خدا زشت می شود. بد می شود، بد رنگ می شود. منفور می شود. کسی اگر جانش خوش رنگ نباشد باید بمیرد. مردن بهتر است از زندگی کردن با شرکای بدرنگ زندگی. خفه شدن خوبتر است تا حرف زدن با مخاطبه به راجیهای صد تا یک قاز. اگر آنها آنجور که او دوست دارد رنگ نگیرند، دیگر خدا را هم آنجور که دوست دارد نخواهد پرستید. دیگر دنیا را هم آنجور که باید باشد نخواهد دید. همه چیز را بد و زشت و نفرتبار بار میبیند همه چیز بدگوونه می شود خدا جهان و حتی خودش. مگر نه راه به سوی خدا از میان آن که منم میگذرد. مگر نه من آن چونان که میبینددم هستم و مگر نه جهان را آن که من هستم میبینم. پس همه چیز دنیا و آخرت همه در انتظار آنند که آنها چگونه رنگ خورند. چه کار کند؟ این فرشته ها هم که دمی امان نمی دهند. دست پاچه و تند تند فشار آوردند که زود بگو، یکی از همین رنگ ها، غیر از اینها دیگر رنگی نیست. راستم میگویند. اما او چه کند که در این کارگاه رنگ رزی آلم رنگی که به کار او به درد او بخورد نیست. بیچاره شده است چگونه انتخاب کند چگونه انتخاب نکند بالاخره انتخاب نکرد او آدم لجباز و یکدنده است. نه در همه کار در همه کار آسانگیر و بیاعتناست هرچه شد شد زیرا هرچه شده شده است اما اینجا شوخی نیست این کار آخر چه بگویم قهر کرد و با اخم و خشم گفت نه nah, نمیخوام بردارید این رنگهاتان مال خودتان بروید با آنها در و دیوار دنیاتان را رنگ بزنید مرخا و ماهیها و چیتها و احجار کریمه تان را بزک کنید من آنها را اصلا رنگ نمیزنم من بیرنگ دوست دارم به رنگ ابر رنگ نسیم قطره آب، به رنگ روح خودم بی رنگ بهتر از این رنگ های بازاری شماست این فرشته ها که احساس ندارند شعور ندارند این حرف ها سرشان نمی شود فرشته عشق نداند که چیست اینها یک مشت عمله اند، یک اده کارمندان جز یا کل دولتند. باید زود به هم بگردند و سرش را هر جور شده به هم بیارند و فوری بروند سر کار دیگری کنتراتی کار می کنند، تقلبی کار می کنند، سرعمله شیطان است. درست است که ظاهرا همه مطیع و منقاد خداوند خدایند و برای او کار می کنند، اما پنهانی دست همهشان در دست شیطان است. همه در بیعت اویند. ارزه اش را نداشتند که مثل او اسیان کنند، اگر نه میکردند و پنهانی میکنند. بهترین فرشته ها همین شیطان بود، مرد و مردانه ایستاد و گفت نه، سجده نمی کنم، تو را سجده می کنم، اما این آدمک های کسیفی را که از گل متعفن ساخته ای، این موجود ضعیف و نکبتی را که برای شکم شکمچرانیش خدا و بهشت و پرستش و عظمت و بزرگباری و آخرت و حقشناسی و محبت و همه چیز و همه کس را فراموش می کند، برای یک شکم انگور یا خرما یا گندم وار، پوزش را به زمین فرو می برد و چشمش را بر آسمان و بر تو میبندد سجد سجده نمی کنم. این چرند بدچشم شکم چران پول دوست پولدوست کاسبکار پست را سجده کنم. کسی را که به خاطر تو برای نشان دادن ایمان و اخلاصش به تو یک دست گندم زرد و پوسیده را به قربانگاه می آورد؟ او را که به خاطر خوشگلی خواهرش حرف تو را زیر پا میگذارد، پدرش را لجن مال برادرش را میکشد. نمیبینی اینها چه میکنند؟ زمین را و زمان را به چه کسافتی کشاندند؟ مسیح و یحیی و زکریا و علی را بی رحمانه و ددمنشانه میکشند تنها به علت آن که می توانند نه؟ تنها به علت آنکه شخصیت بزرگ روح بلند و انسان پرشکوه تحملش برای اشخاص حقیر ارواح زبون و آدمکهای خار و زلیل شکنجاور است و احساس بودن آنها اقده های حقارت و پوچی را همچون ماران خوشدار به خشم میآورد و دیواره جانشان را نیش میزنند و از شدت درد دیوانه و هار میشوند و آنگاه با کشتن و سوختن و پوست کندن و شم آجین کردن آنها که بودنشان برای این زبونان جرم است آرام میگیرند لذت میبرند و شفا مییابند و آن وقت سه میلیاردشان نوکر دو سه تا جانور خونخار نامردی میشوند مثل نرون و چنگیز و تیمور و خلکو و آشوربانیپال و خلیفه و قیصر و چنبه و متمدنهاش استالین و هیتلر و نیکسون و هیس همه بردگان رام و زبون فرعون یا قارون یا بلعم باعور آری من از نورم ذاتم از آتش پاک و زلال بیدوده است من این لجنهای مجسم پلید پست را سجده کنم حالا این فرشته‌های دیگر هم که ظاهراً به حرف خدا گوش کردند و شیطان را تنها گذاشتند، دستشان روی دست اوست. در کارشان خیانت می‌کنند. دارند در ساختن آدم‌ها کاری می‌کنند که حرف شیطان درست از آب درآید. ممکن است بگویید: "نه، تو بدبینی، داری مبالغه می‌کنی. اوقاتت تلخ است و همه دنیا را تلخ می‌بینیم." چه میدانم؟ شاید اما اگر اینها با او همدست هم نیستند، اگر چنین قرضی هم ندارند، نتیجه کارشان که جز نیست. الان اگر خدا و شیطان بیایند و یک نگاهی به این بچه‌های حضرت قابیل بیاندازند، شیطان سرش را بالا نمیگیرد و سینه‌اش را جلو نمیدهد آن رجز فتبارک الله احسن الخالقین برای همینها بود یا برای قربانیان بی‌دفاع اینها؟ برای آن تنهایانی که هنوز ناله دردشان را از اعماق این چاه ویل تاریخ میشنویم یا این همجُر رآها که از زور خوشی ترکیدند و در ته چاه سر به مرگشان را گذاشتند و تخت خسپیدند خدا خودش میداند که نتیجه این بازدید چه خواهد بود و از این است که دلش بار نمی‌دهد که قدمی به این آدمستان زشت و بد و کسیف بگذارد حتی نگاهی هم به این طرفان نمی کند این کلوخ آلوده را با حشراتی که بر آن چسبیدند در این فضای لایتناهی رها کرده است و به خودش واگذاشده است این است معنی به خود نهادگی آقای سارتر یا حرف لوکرس که می گفت خدایان به کار ما کاری ندارند یا مترلین که میگوید همین که انسان را آفرید دست از کار و حتی دخالت در کارها کشید و کارها را به انسان واگذاشت گذاشت. البته آنجور که من معنی می درست است نه آنجور که آنها فلسفه می بافند. آنها می‌خواهند این حقایق را مایهی برای پیغمبر بازی خودشان سازند و از آن برای ارشاد خلق و بنیاد اخلاق و مذهب مسلحت آمیز و ساختن نصایح مشفقانه بشر دوستانشان سو استفاده کنند که مثلا اینکه خدا زمین و آدمهایش را ول کرده برای تفویض رسالت خدایی خیش است به انسان وگرنه این معنی دارد که خداوند عالمی بیافریند و با هزار آرزو و آرمان آدمی که معجزه خلقت و هنر خدایی خیش است بسازد و از روح خودش در او بدمد و بعد او را و همه چیز را ول کند و برود دنبال کارش دنبال چه کار؟ لابد دیده است که چیزی از آب در نیامده که بلش کرد دید که این لجن متعفن قابلیت پذیرش روح او را نداشته دم اهورائیش در تعفن این گل بدبو گم شده است و به جای خلیفهش و همانندش چیزی شده است باب ریش شیطان مگر حضرت آدم یک موجود دو دوبعدی نبود نیمیش خدایی و نیمیش شیطانی که خوی خداییش را به حابیل داد و خوی شیطانیش را به قابیل خب حابیل که جوان و ناکام مرد قابیل کشتش و اینها که خودشان را آدمی زاد میخوانند همگی بچه های قابلیل پس و قاتل و منفور خدا و آدم هند چه میدانم شاید این فرشته هایی که این شبه آدم ها را درست میکنند واقعا قرض خاصی هم نداشته باشند واقعا با همکار و هم سابقشان شیطان هم دست و هم داستان نباشند. ولی لاقل این هست که اگر هم توطعی در کار نباشد اینها کنتراتی کار میکنند. تقلبی کار میکنند. نمیدانم. شاید زورکی و اجباری کار میکنند. یا خدا روزمزدشان نکرده کار مزدی کار میکنند. یعنی هر رأس آدم که بسازند مثلا یک قران مزدش را میگیرند. یک قران چه خبر است؟ چهار پول، نیمه یک قاز، این است که تمام هم و غمشان زیاد درست کردن است، بالا بردن سطح تولید است، حالا هر جور شد، هرچه از آب درآمد؟ رقابتی که در کار نیست، عرض و تقاضا و انتخابی که در این بازار نیست، آنگهی، مگر مایه اصلیش چیست؟ خود خدا صاف و پوستگنده بارها در تورات در قرآن فرموده است گل، خاک، لایه تهنشین شده گل و سیل، لجن بدبو و گند خب از گل و لای و لجن مگر میخواهی چی از آب من از روی همین آدمهایی که درست میکنند و هر روز خر در خربار هی میدهند بیرون فهمیدم که آنها کارمزدیند، تقلب میکنند، حتی توی همین لجن و گل لای هم جنس آشغال میزنند از مایه روح و احساس و عقل و زیبایی و آن بارغه قدسی اهورایی میدوزدند کش میروند و ریشه و پی و چربی و روده و شکمبه شده و استخان و پوست و پشم و قازوراتش را زیادتر میکنند آن اوایل باز کارهای بهتری بیرون میدادند. هر چه می گذرد بدتر می مگر نمی بینی، حتی بعضی ها را همین جوری نیمه کاره می دهند بیرون. هنوز اعضای یدکیش را درست به هم نبستند و جوش ندادند و پیچ و مهرههاش را سفت نکردند ول میکنند رو زمین. بعضیها اتاقشان را که میسازند خالی میآورند به بازار. غالباً یادشان نیست که لاقل یک قطره عقل و شعور و عاطفه و فهم و ذرافت و انسانیت و روح توی لشه به این سنگینی بچ کنند. یک گردی به اندازه زعفران روی پلو برای تزئین، برای جلوی چشم مشتری رویش بپاشند. به قدری آنجا سرشان شلوغ و حواسشان پرت است و از روی بی و سهلنگاری و دست پاچگی کار می کنند که گاهی اصلا اسباب و لوازم آدم ها را عوضی می بندند. مثلا زبانی را که برای یک آدم حسابی ساختند و مال یک شخص شرافتمند و خوش سخن و پاکدامن و مهربان بوده است می‌گذارند توی دهن یک دزد قالتاق پاچه برمال چشم و لب و ماسک صورت را برای یک تیپ معصوم دوست داشتنی پر محبت و سمیمی و فداکار ساخته بودند، می‌کشند به کله یک رند هفت خط بدکاری رزل. کله را با سر تراشیده و پیشانی مهر شده و ریش توپی دقیقاً خطکشی شده و لبهای قنچه کوچک و باری که فرو رفته در ریش و شارب ساختند، برای ذکر و ورد و صلوات و تلاوت و پیشانی پین بسته ریخته شده برای سجده های طولانی مادام عمری و, و ها و نمازهای سطرکعتی در دلهای تاریک شبها و دمهای نیم روشن سهرها اما از دست پاچگی عوضی گذاشتند رو گردن های مارگیر رو زالو عمل، بوغلمون رنگ، جیب بر. کشم بند بیرحمی که وقتی در دوره امام یا پیغمبری به بازار تاریخ میرسند میشوند یهودا و بلعم باورا و سامری و مسیلمه کذاب و شمر زلجوشن و قاتل امام و کشنده پیغمبر و همدست یزید و قیصر و نمرود برای نانی و نامی و وقتی دیرتر میرسند یعنی زمانی که اسلافشان نه پیششان همه این کارها را کرده اند، ناچار میشوند، متولی همان امام و خلیفه همان پیغمبر و مدعی همان دین برای نامی و نانی، این سیاست مداران بی شکست و تجار بی شکست. گاهی دل و دماغ یک غلام برده کنیز و نوکر یا گاهی حتی از حیوانات، مثل دل و دماغ خوک یا سگ یا مار یا گاو یا اولاغ یا روباه یا گرگ یا انتر یا بوغلمون یا موش یا جغد یا شطور یا گاف پلنگ و غیره را همینجور چشم بسته و شانسی میچپانند توی اندام یک آقا یک خانم یک شخصیت بسیار برجسته محترم دانشمند معنون نمیدانمد گاه فکر می کنم. شاید شوخی هم میکنند. خودشان هم از این کار یک نباخت و خسته کننده ای که بیش از 500 هزار سال است از آدم ندرتال تا فیلد مارشالو از یعجوج و معجوج تا انگل و ساکسون و از آدم های میمون نمای اهدبغ تا میمون های آدمنمای عصر برق فرقی نکرده و بلکه افتضاحتر هم شده است. شان سر می و گاه برای تفریح خاطر و خنده و شوخی و رفع ملالت چونین کار بی سمری جکهای بامزهی می سازند. مثلا یارو می بینیم مرد است، و شلوار و ریش و سبیل و اهن و طلب و صدای درگه و کلا و اسم مذکر و حتی زن و بچه و با این همه قرائن مثبت و دلایل معیده زکوریت و رجولیتش بعضی احساسات زنانه دارد. مقصودم بعضی انحرافات جنسی نیست، نه، آنها که کار فوکاهی نیست، آن را خود این ابناع قابل ابتکار کردند. صحبت از شوخی فرشتگان است که گاه آدم عوضی می سازند و گاه آدم خنددار که مثلا مرد است، قیر و می کند, ناز می کند، زیرب رو بر دارد, از عیالش در منزل کتک میخورد و از فرد نجابت هیچ اکسل عملی نشان نمی‌دهد. فقط می رود گوشه ای، یواش یواش به طوری که شوهر معنسش متوجه نشود و باز کتکش نزند گریه می کند. و یا می رود پیش جاری سیبیلو یا آبجی ریشدار یا برادر گفته یا همسایه یا همکارش درد دل می کند یا می نشیند و ساعتها غیبت می کند یا در برابر رقیبش دشمنی ها و های ملا باجیانه می برزد و علیه همکار اداریش هوگری می کند و برای از پا انداختنش به جادو و جنبل متوسل می شود می پیش بزرگتر محله یا داش محله یا سرپرست خانواده از دستش شکایت می کند چغلی می دهد. دروغ و راست سرهم می کند و پرش می کند پیشش گریه می کند و آه میکشد و وقتی دید اوقات او از دست طرف تلخ شد توی دلش قنداب می کند. دلش قنج میزند. اگر هیچ کار از دستش ساخته نبود، کتاب دعا می دارد و با دلی شکسته میرود به حرم و دخیل می بندد و زار زار اشک می ریزد و همکارش را نفرین می کند. برای مرزش، تصادفش، ازلش نظر می کند، قربانی می کند. یا همیشه توی زندگی دنبال یک سرپناه آقا بالاسر، تکیه گاه یک مرد زندگی می گردد و گاه حالات مشخص و روشنی را در خود احساس می کند. از قبیل برخی حالات ماهانه که در اینها سالانه و عمرانه است یعنی مادام العمر زگهواره تا گور قاعده هند. و در قاعدگی زندگی را سر می و رگلشان هرگز عقب و جلو نمی افتد. هرگز تعطیل بردار نیست حتی در ایام بارداری و نیز حالاتی از قبیل همین حاملگی با تمام عواقبش از جمله ویار کردن و حوث قرقروت و زغال مو و کاه گل کردن و شکم دار شدن و برامدن پستانها و متورم شدن رنگها و کک و مک افتادن و پف کردن پوست صورت و قاچ قاچ راه رفتن و خود را در راه رفتن به شانه طرفشان تکیه دادن و دو قدم نرفته از دل افتادن و عرق به جونش نشستن و حتی دردهای های ماهای آخر و هفته های آخر و انقلاب و التهاب و تکان خوردن بچه و گاه احیانا پیچ خوردن سر بچه و سخت جنین و ماندن جفت و درد زاییدن و نشستن سر خشت و برای آقاشان با عداعتفار بیشتر ناز کردن و منت گذاشتن و خود را گرفتن و مفصل است.